Thank you. دی بیست و و سه چهارده سفر نو سلام آجا سلام. سلام سلام تو که سرده چند درست نشده دکتر رفتم آجا چیه موری پیش آمده نه با خدا را کنم چی موری چی موری؟ امروز من... ام جوه کنورو میدن اه... داشته بسم خب مبرک بشه اینشالله خب دفعه هم سر کار چشم نمونه بنخشه قبول شد اینشالله ما خانم اینشالله <coughs> <coughs> <coughs> اینشالله خار خصوصی پرزم دارم نه یاد اینجا چشم آجام هلین یه سرچه دیگه توالی نمیشه هم <coughs> اسم پده قاسم آقا قاسم پس های نمیانی داری چاش خانم الان میا بابا دیره چاش. چشم یک پرمش سه های چون شما داره بابا مسته پس باشه اون رو بگو. باشه. ماریا ماریا سلام سلام چی شده قبول نشدی؟ قصه نخوری از ما کی قبول شدی که اصلا تموا داشته باشی مگه داداشت بیچاره واسه کنکور کم زحمت کشید چی شد الان سربازه های خالت هر سیتاشون کلاس کنکور رفتن چیکار کردم هیچی اسمت دیگه چه میشی کرد تو سرنوشت یکی هست تو سرنوشت یکی نیست مامان قبول شدم سلام سلام قبول شده دیگه پانشو خانم کوشش محمول کرده پس میرش پتان جوه کنفورش میاد باید قبول میشه بعدم قبول شده درستش درد مکنم کجاست؟ تو اتاقه شام که نخورده؟ نخورده خوابید چه نشده؟ چرا؟ دارو سازی همونی که خودش دوست داشت آبا چرا خوابیده؟ چرا خوشحال دیستی؟ دانشگاه آزاده باشه؟ مگه میتونه بره؟ چرا نمیتونه؟ مگه شهریه چقدر میشه؟ بسه سبتنابش یکی کنی میخواد دقل یکی کنی میگو؟ بله جورش میکنه؟ چجوری جورش میکنی؟ هر شش ماهی بار این هر پول از کجا میخوایی بیاری؟ فریشته داروسازی ها 5 سال طول میکشه تازه فقط این که نیست این همه رو باید بره بیاد برای ماشین میخواد لباس میخواد خرد و خوراک میخواد تا کجا میخوای بیاریش آگه می دانشش بیاری. کجاست رودهن هر روز باید بیاد و بره بله همینطوریش از خودش حساب کرد هر سال حداقل 5 6 میلیون هزینه‌اش میشه تا زنگ گرون نشه این روزام که قیمتا قیمت ها ساعتی داره میره بالا میگه هیچی قبولی شو به مرتضی هم گفتم به قدری که ما نمیتونیم زنیم بزنیم. خونم که تلفن قطع زنگ زده به خون آقای کرماشا چی؟ به خواهرش چی؟ خواهرم چی؟ رشید میدونه؟ نه خب با خواهر بزن اول سابسترامش بکنیم بعد جار می‌زنیم میدونیم من فردا میرم دانشگشون صحبت میکنم. شجاعتونو میگه حتما قبول میکنه. ان شاء الله چه میدونم والله. کی چیدی؟ من که تنهایی نمیخورم جمش کن. کنم. داری میریم برای نام کنم کجا؟ دریمه میری مالی ساختهنا خوش اومدین ولی با موتور که نمیشه موتورتو پارک کن اینجا خودت بیا برو بابا من زحترم تو اومدی به دفتر ساختهنا کجا تنهایی؟ چی کجا تنهایی؟ بز بره ولی من باید بدم شفترام کنم من باید پول بدم اینکه پول آدم پول نمیگیرن الان فقط ساختهنا میکنم باش. برو برو نیا برو بابا اگه خودت باش راشون دیگه نمیری مشکل خودشونه این همه هزینه دانشگاه میگیرن وقتی برق استراری ندارم بذارم من که تو ثبت نام نکنم نمیرم بچه ها ازا تو خواهش میکنم شما هم تو ثبت نام نکردید نرییم حالا مردم بت نام صند سوم یا یه ماه پیش بود از سریع بودم آقای شاپوری نامه بیمارستانم که براتون آوردم دیگه چیکار باید بکنم ببخش خم ساعت چنده ده دقیقه میشه یه لحظه اینجا جای منو بگیری من برم بیرون بابا منتظره زود بر میگردن بابا تو چرا آوردی؟ اون برش نام دیگه بابا تو میخوای ثبت نام کنی؟ یا ترسیده گم نشی؟ اصلاً... آخه چه دخیه فابریکی. برو بابا دو گونه گران نباشه من مارا کنیم تحسیم در نکنیم آخریش بیارم تو چی گفتن؟ حنو سی چی تو نوبت هم برقام رفته. اومدم میگم شما برید فکر کنم. سر کار دین مگه ساعت 12 نیمه سر کار رو چرا؟ مگه خیلی طول میکشه نمی‌دونم فکر کنم تا 3 یا طول بکشه. خیلی خوب. ناهار چیکار می‌کنی؟ ناهار که تو کی فهمم اونجا بوفه داره. خیلی خوب. پس من میام دنبالت. نه بابا کجا بیا این حمر اینجا هم اتوبوسن هم ونر کرایاشم بکنم بیرون وای میسته. خیلی خوب. چته؟ پول امرت اش؟ آره یه ذره همرا هست. آه. کمه. بیا. قضایی خوب بخوری یا بگی اوتوبوس هم گیرد با کرایه بیا باشه باشه برو سلامت. بست نده نکن راستی مریم بیا این هم برات باشه با من که لازم ندارم پس خودت. شاید تو بخوای تایم بزنی یا من بهت زنگ بزنم این باشه بیشتر خوبه برو دخترم برو برو موازه باش مهمت بیرون نزنه شی دیگه اونم خیلی ممنون باشه চাচا بزرگ هستین شما هست خدا ببخشید من جلو شما بودم بله بفرمایید شقایق رفتار چشو سپادا به من شقایق کی اون خانوم که جلوتون بود شقایق اجبرد بی خودی اینجا وای نسیید امروز وقت نمیشه تا حالا که برق نبود الان هم که میخوام برم برنامه ها ببخشید اینجا جای کسیه بله جای شماست که شما بهت حرف بگی بش خوبه حرف نداره خب اما گیرم امضا کردیم کل کلش میشیم دهیازنه نفر نه 20 نفر بقیه چی بقیه هم امضا میدارم خو همه دارن میخورن دور و نگاه کن بذار که علف هم بذار دورشون میخورن توهین نکن اسم خودت هم تو بیستا. تو چطور این غذا رو می‌خوری دختر خیلی گرسنه محسو پیچ نخوردم اولینو امضا کن بعد غذا تا بخوری چه اعتراض به غذاهای دوشنبه شب من جانش نمی‌شدم خب بالاخره سبتنام می‌خوام اینا دارن متعالنی دانش اگه دلت می‌خواد بگی چایی این تو دختر این چرت چی هست؟ حمد حالی از یه تومن هم تا هرچه ها دوسته ممنون باسته کی؟ باقا شاپو همین کمک آشبازه مندخولو پسر های سرطانیه ببینیم خوبه خانوم عبدتانی این دیگه چی؟ این برای اعتراض نار شنبه و پنشنبه است. تو صفح های سادندگی دارم میام نه حالا میام بهت میگن باشه باشه. باش خدا باش باش خدا. باش باش <تصفيق> چطوری دخی؟ ببخشو با این نواز ناشناخته همه بیو بالا های تهران نمیرسه بیو بالا دیجه او جلو نه جلو جای عشق هم براه خب پس موضوع همه تو نمیشم. خودم میرم، الان خود تو بوست میرم خب تو نکن، بیا بالا اومدی؟ چقدر دیر کردی عشقم داشتم میگرفتم من که گفتم تو تو نه نمیرم برو، سیامک زنگ زد، گفت خودش میاد دنباله خب حالا تا بیاد دیگه. نه یه راب دیگه میرسه دیگه تو برو خودش خداف خدافه خادفز یه جفت از این کپشو برام بیا خودت هم گیجا دارو تادی خیلی لشته این خوبیه بس درس میده تو گوش میکنی یادداشت داشت بر می فقط باید فرمولار رو یاد بگیری هیچکس کزم بحث نمیکنه حالا خوشباله منه که مهندس میکنیکم اگر این شیبای بدبخت رو دیدی انتخاب ا عزت همونم قبول شد حالا باید به عالم آدم جرا وحس کنه تو که انتخاب واحد نکردی؟ یه سری واحدارو خودشون دادم پرشنبه ها واحد نگیری یا جاندیه شماله ترافیکه دیگه من شاید نتونم بیام چی؟ تو یه زنینه کمش کن خب تو بلندتر بگو میگم شاید اصلا نتونم بیام دانشگاه واسه چی؟ ببین صداش خیلی زیاده خوشتی منو رافتم پرسیدم گفتم فقط 700 تومن شهریه ثابته. وایده عمومیون 40 تومن، هم بین 100 تا 150. خیلی زیاد میشه. یه پسر استو دانشگاه سیناست. سال آخریه. همهی واحدارو میشناسه. هر ای رو که بگی یه طوری دور میزنه که هشت ترمو میکنه شش تا. البته 40-50 تومنی هم میگیره. میخوای باش حرف بزنم؟ نه، نمیخوام. باز چی؟ من بابام کارگره. بعد عمری تازه دو سال تونستیم خونه بخریم. اونم قسطی. پس مشکل نام داری باید بری دانشگاهی باید بری دانشگاه تنگی بود بخونه بفروشی بول شدی قاسم نمیشه ای خب اگه پسر بود میگفتم آره حق داری خونه رو بفروش آیندهش با ماست ولی این دختره بخونه یا نخونه تصمیمش و شوهرش براش میگیره آخه این چه حرفیه که میزنی اگه بخونه فلان دکتر فلان با انداز کرش میاد می مثل من بدبخت میاد تو اینو نمیخوای؟ نخیر، من اینو نمیخوام. چه چی؟ اینو میخوام که فردا سر پیری سخت بالا سر من باشه که آواره‌ی کوچه خیابون نشیم. مگه من چقدر دیگه میتونم کار کنم؟ خود تو چقدر میتونی با این موتور فک این دور دور بچرخی؟ خیلی خوب درست میگی، درست میگی. ولی این باید درس بخونه. ببین قاسم، بی خودی بهش وعده نده. من نمیذارم خونه رو بفروشی. نفروش بابا. خودم میرم سر کار. کار؟ کجا؟ یه چند تام کار گیر آوردیم که ساعت پول میدادن ولی باباش رضایت نداد. اینی که گفتم بیارم پیش شما اگه شما قبول کنین به خود خیلی به این کار احتیاج داره قلحانگیری زبون چی؟ انگلیسی؟ فرانسه چیزی ولده؟ انگلیسیش بد نیست تو چه وزنگار اینجا بهترم هم میدونی؟ همه خب به شما امکنه میشنه نه گفت ممنونه چه میتونی به خودت بیاریش اینجا؟ هر وقت بگی میارمش هر وقت بگی میارمش راوند آوردی عه منم تو صحنیستم شو شده مری اول صبی شی بابا حالم خوب نیست اومدم با خسی بگیرم برام دنبال بدبختی راوند آورده کی از جایی کی نه جای کسی نیومده جای خودش ماده دختر منه مریم ای وای ماشاءالله نشنختم چه شده اصلا شب نبرد نموندن اروسیه رو دیدم خونه دیدم بابای باز دل کردی گذشته رفته ای بابا خدا دیگه آمسی دیشب دادم عمل بالا تاکسی در بستی تا الان داشتم دنبالش میگشتم نمیدونم در چجوری جوری وا کرده رفته یه پشتم چیزی می سخونه بوده بردش جمع کرده توداده ماده المون بگیرم ببینم چه خاکی به سرم بری زمین و ب من از اون زمین بردار راحت مادر نکنین چه حرفیه برخه یه مادر می فرمی شما به من یهزدی ابش تر. سلام سلام همو خانون تختر دستگاری مخترته آبوردمش آنگایری باشی ثابت کنم ببینم چی میشه دیگه حت من چرا نشه چقدر تو نوازی چشکوش کری خودیتی پیاس آنگاتی، همین یادونه هست همه خانم بومی. سلام سلام خیلی بارم مریم با آوردم داره حاج آقا باش میکنه میکنم آخو درست میشه دیگه؟ آخوه، نتیجه چی میشه؟ الان بید بیرین شما را اینجا ببینه داره گیر بده آخو اینجا سارگارتی باز خوب دو میگم خبری شد، میم خبرت خب فقط میبونه بخش خانه داری که یعنی شما یه جورایی میشه همکار مادرت فقط اونجا شب بشی دورایی تنظیمش کرد حالا تو شما دخترا همه خانمی. والا من اصلا نمیدونم کار مادرم اینجا چیه خانه داری خدمات خب ربا تو میدونه برای تو سخته تو دختر تحصیم کرده دانشجو، خب کاری دیتون میخوای کار کنیدیه تخصوصی هم پیدا که بله خیلی هم ممنون آفری خیلی خوبه خب از شروع کنی؟ هر وقت شما بگی خوبه؟ یه در الو سلام بله دیدم دیر اومدیه خب مهم نیست اون کنی که داری به زمین دقی به اینجا ممنون در بندیده در بی تو. فایدی من خانم اصلا. سلام. سلام. دخترم خانم. خیلی خوش باید. خوش خوشوقتم. بابادن در بخش خانه داری. این میز شما. میخوام لطف کنید بذارید، بذار اول صاحب ایشون بدین، حَمّاچهم کار یاتون بدین. برنامه‌شون رو طوری تنظیم کنین که اول برای خودشون کار مهم باشه، بعد درس. ولی برای شما اول درس مهم باشه بعد کار. منظور به تنظیم بله. باشه. اون یه روزی که من بکنی یه روز و نیم اون نصر گذن با مسئولیت من نهل چشم پاژانا ها موسمی. بله بفن در از اضافات اتاق معمولا فاصله بعد از اینکه اتاق تخلیه شد و صورت بگیره. بعد این از اضافاتم بعد چک کنین از سرویس اتاق چیزی کم کلاسه. بلافاصله جایگزینش. شامپو، فامیلاندو، مسواک. مثلا مهم‌تر آنکاد کردن پتو رو بعد یادت بگیرید. باشه که کارتون رو داشته باشیم بهمون این کارو انجام بدین. باشه. ایزالا، کارو انجام اولشو می کنید معنوس کجا در میاد شما بفرمایید من اینا کجاست بله معناس خوبه بله حتما میشه بله شما سلام سلام خواجه من خوبم حسنا خیلی ممنون راجب اون دوست من حاجی صحبت کردم گفت وقت ناریه سری بهش بزنید حل میشه اما خانم اینجا از بهتریناییم هست. بچه ها درد نكنه. باشه. قربونت برم عالی. بهت میگم دیشب کجا بودم مریم جان مریم مریم یه لحظه من گفتم عروسی داشتم عاشق توی کلیسیکو الو مامان میگه بچه‌است دخترم دیگه مش میگه چی شده عزیزم گریه نکن گریه نکن بریم من مریمم هم کار مامانم تام خب دیشب تا ساعت 3 اینجا عروسی بود یه خورده دیر شد آره واقعا واقعا آره باشه مامانت من دیر می کنمم این مچهی خو بجیگر میکنه ما اون باور کردی حالا دیگه نبینم گریه کن الی من قربونت برم اشک نیا تو چه شد. باشه میگم به اول بعد حالا میز گند زدن چ جووری به این اتاق ببینن فقط بلدن چهار تا چهار تا زن بگیر اون خورن زن بب... ما ماما. مامان جا سلام عزیزم ببین مامان نه حالا من سر میکنم که زود بیام ولی اگر که ای دیر شد شما میتونی ببرش درمانگاه. آره من اینجا کار دارم من دیشب تا ساعت سه اینجا عروسی بود جونه دارم اینا چی کار این چیه؟ تو دستشویی بود؟ بریز همه رو بریم کنم خبالتا زن بگیرم ببینی بستا بالا من الان میام الان میام خورمونه دارم خب؟ آره چون نه اینجا پر کار مادر یه وقت میبینی من تو کار دارم مگه نه دیشب تو ساعت فردوستی عروسی بود تو اینجا چی کار میکنی زاری؟ زری جانم جونوزم بابا تو کجایی؟ نه تلفونی؟ نه خبری؟ چی شد بابا؟ بابا چیکار چی کار داری؟ این؟ این اینجا این دو... چی کار میکنه؟ دو... کمکت دادن؟ نه نه بابا کمکی من کش فکر کنم تو رو جا به جا کردن یعنی چی؟ نه دقیق نه؟ بابا ده سوال کار یه سلام اومدم اینجا یه کارم بود دادن جای من قرآن واسه خودت کردن گفتن گرفتار کار بابا خلاص کردن گرفتاری چه کی گفته به خودم میشه بیا بابا چیزی نشده که ا این چابیه کارونسرای عباسیه ملی خانم بچه‌ داد و رو به من آقا خبر داری چقدر محتاجم. چقدر منت خودتو کشیدم چقدر التماس آشقاره کردم که منو بیاری این طبق خب ده. الان حالا چی چی شده حالا مگه؟ اخراجتون که نکردم بفرمین بشینیم پایین تو دفتر رو هم تا بیان با صحبت کنم. با... بفرمین به خدا قسم با امم حرف زدم با پیدا کنم یه مدت نفرستم پیشش بریده منم خلاص شم نفس قاعد مگه ای که حالا تو دفتر من پاشی من یه باطل صدق کنم خورم اینشو بخورم محتشم اما ات برین هر چی دوست داری نه دو من اینجوری نگفتم اصلا پس بهتون میگم بفرمین برین تو دفتر بگین این چه هر شما چون کار زیم بوده بزرخان کار زیم این چند تو عکس گرفت همه اچه همه از راست خلاص چند تا چند تو اکس هم اینجوری بودش جولو منو مشونم دود اینجورم هر. این مدل ها خودمو میخوای؟ گفتم که ولات آقامون بعد انتخاب کنم. و در عوض سمد آقا بعد نظر میداد دیگه. شما یه چند تا پریم بعد از اینا بگیری من ببرم آقامون ببینه اونجوری گوش میگیری اون ماجون. هزار دفعه اینا رو تعریف کردید. حیف سلامش. واسه تو نمیگم که واسه مریم میگم. مریم جو اون موقع اصلا حالا نبود که اینجوری سرپایی باشه. میخواستم که این کارا رو در عملی حالا نگو من. فالنا ابو ما باردارم خوش میگی نیام جون باردارم خبر ندارم این آقا سمن اون موقع بید. اصلا انگار نه انگار نیامد بیمارستان منم بیشتر از 19 ساله گازته بودم منم فهمیدم تو امروز اینجا هر اتفاقی افتاده تو پام وا دفعه آخرش هم این دزدی از اتاق 1705 بود که خدا رو شکر معلوم شد دزدی در کار نبود تو امروز مدیونت بودم اما از امروز بعد دیگه مدیونت نیستم. فقط خاطری که بعد چند روز مرخصی که برگشتم فهمیدم دخترت کار منو دو دوست داره. مبارکش بشه. مبارکت باشه. مبارکتون باشه. دختر 17 ساله سه پنج دوستیل آورد. باهت حتما بگم اوطور خدا فرو از درد تو سکت. علی خان من می‌خواستم برم پیش آقای آهنگری بهش بگم که منو عوض بکن. اون چه زاری خان نذار. نکن. خودت قاتی بخور، بلند نشو برو سر درسات. برو خاله، برو قربونه به سلامتی. این میبونای سویتی که میخوایم بریم تنسیم هم هم بفتهایی خیر سرشون تو <تصفح> چی کار کردن اینجا رو تو مردا همه شو شلختن گیر پدرمون <تصفح> درمده ها اون کاغذارو جا به جا نتونه کار خودمه آره دست نزنیا. به درم درو درمی یعنی گفت دیپلماتون دیگه دیپلمات خودت هم که بکشی دلار که هیچ ریال هم بهت انعام نمیدن فقط وللا سختگیری کن نگا آفریقا یا رو زمین میخوابم میبینی خب <تصفح> زرجو من از کجا <تصفح> شروع کنم خب شما هیچ‌چوری آشپزخونه رو تموم کن تموم که شد رو بهت میگم دستشویی فقط سه ساعت کار میبره <تصفح> این آفریقا آره دست... ببین بهت گفتم که موبایل ممنوعه دیگه تو محیط کارن من اصلا موبایل ندارم بهتر راحتی تو ریسم نداری چه کاری عزیزم سلام چطوری؟ خوب سو صبح به کجا بری؟ مامانتینا؟ نشون؟ نشونه چی؟ چی؟ تو خاموش کردین نو. اینجا رو آمار خودت تمیز کردی. آه. الهی من قربونت برم مریم می خوام یه چیزی بهت بگم. تو نفر اولی به هیچکی نگیو. چه شو دارم بهت میگم به هیچکی نمیگی. می خوام شوهر کنم. وای مبارکه. نمیگیزی هم دست میگیرن اینو میشناسی شوهر احمد آقا چی؟ سمت چیه تو هم. حاج قاسم احمد. فکر کی سمت اون که سه تا فهمید ولم کرد. هزار جور دروغ و دقل و کلک که زنم مریض بیماری روحی داره بالا تازه سیغش بودم ولی نادر الهی میمیره میخواد منو بگیره آخ خدا خداش شو دو کنه فقط گفته زری همه کار واسط میکنم همه کار خونه میگیرم اجارشو میدم فقط بچه پشت نباشه شرطش دیگه چی کار کنی پس چی میخواد موندم به خدا آخ از این طرفم میگم سهرم بزرگ شده مامانمو دوست داره مامانم از خداشه خیلی همو دوست دارم نمی شاخه همیشه بچته بذاری پیشم الان ببین نادر از دیشب که قلدادن مادرش اینا مثلا باشه همش داره ذهن میزنه <تصفح> الان نادر بیرون گفتم برو بیرون مستقیما میری فازو من اینجا انتظار خواهم راحت میگم چهار روز یعنی نه اینکه بری هفته دیگه بیای عروسیم بود خانم محششم به خدا جواب منو نده برو بیرون ببینم گم شو بیرون جو عباس واسه اونم چی؟ خیلی برو دوباره دستش رو بساب. برو بساب، برو بساب. سرجین چی شد؟ آزاده بیچاره رو اخراج کرد. همون تازه عروسه خوشگل بود. آره حیونی، احتیاجم داره. خب اصلاً اخراجش کردن. خب تقصیر خودشه مریم جان. 4 روز بهش مرخصی دادن، سه روز دیر کرده احمقی خر. اون که الان چند روز اومده. باج امروز زنه دیدتش دیگه. چیکاراست خانم؟ مدیر پذیرش هotele. نمون اینجا، برو دستش رو بساب. ای برو آقای وحیدی کنجا پایین گفتان بالا سلام یه سر زدن رفتن شما خوبی؟ خسته نباشی خوش آمدی شما دستکش نداری؟ من دستگشم؟ همین الان دستم منطقا چون داشتم کنبا چیز میکردم گفتم که بیم پوش بالا. تمیز کردم خواهی محتشمی راضی هستین؟ سلام اون که کو همون شله شله؟ ملی خانی جابجا کردن الان مرخصی. مرخصیه چه عجب بالاخره فهمیدن این طبقه خدمه خاص میخواد صریقه هم خوبه اسم چیه؟ مریم حاشمی البته تو هم مرزی است ولی مریم صدا میکنم چند سالته 20 سالمه قبلا کدوم هتل کار میکردی کار نمیکردم یعنی سابقه کاری نداری دانشجو یعنی چی دانشجو شبانه میخونی نه روزانه پس اینجا چی کار میکنی الان سر کلاست باشی من نمیفهم آقای آهنگری با چی کار میکنه خان دختر دختر اون و خانومه دختر هر کی که هست به هتل چه رفی داره آقای انگلیس متوجه نیست چیکار کار میکنه چم کو واسه زیرا خان منم بیرون که جان تو می‌خواستم بشورمش آمیش بذارمش به بهترام تو هیچی بیش نگفتم اگه به این مربوط نیست تو همی کارم میاد دخالت میکند. الو چیش نقدر زنگ میزنی تو گفتم اینجا موبای منگوه که چیشون رو بابا یه عکس دو در سه دو خط زیرش می نیسته دیگه شد نمیخوام بابا ندارم نمیخواد بره کونستم کدوم روزنامه رفتم همه اون رو رفتم به خود من تو این چند چه پول در درباردم دادم بالام تاکسی و مترو اتوبوس چیکار کنم دیگه به پریم گفتم گفتم من رو جا به جا کن کارم رو گفتم مامم هستش گفته بابا تو پیدا کردی بفرستی پیش مامم مجبوره بشه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه کارم نه چی شده بیرون هم کی؟ چی؟ ببخشید منم دارم دانشگاه. خانم جمی. خانم کی بوده؟ سلام. آقا سلام، گفتم میگم ماشین برسون تو دانشگاه. مرسی، دیرم شده. حالی شما خوبه؟ بهترین؟ من براتون بهدونه گرفتم ما. خیلی ممنون. شما با هم بودین چیه داستان؟ کی خرجش کرد مسلمی؟ نه، خان محتشمی. من برگشتم بدوره. دیروز برگشته، امروز هم همش شما بود. آقا منم دادا چه کار داشتم؟ آجاها در جریانه؟ نمیدونم، آجاها نایی من درستان امروز آما خانوم رو زفند میکشیم بگین یه سر بیاد دفترم تا بگو کیه آبا شو داره؟ حرف در نیار ملی هنچی حرف در نیارم؟ تو چند سالی که اینجا کار کردی تو حالا دیدیم این آقا وعیدی برگرده به کسی میگه که بایسته برستوننه؟ چنیدی حرفشو؟ دختر آما خانومه ها؟ این دختر هم آما هست حالا راستی محتشمه بیرونش کرده سلام سلام نگفته بودی چه هم میای میگم بهت داشتی میرفتی بیرون پاره هستلام سه رفته بود قبلا اما میمدم خونه تو بودی و داشت میگه هم حرف میزدیم امروز ما دم خونیدم هیچ کس نیست نیشستم بخونه جدال کرده گفتم برم پیش خالت دلم باز چه خورده خب الان برو حالا هواتم عوض میشه نه دیگه تو اومدی نمیرم یا حرف دارم چی شده؟ چرا چیزی نگفتی؟ خب مامان نخواستم اونجا ناراحتت کنه. گفتم شب بهت میگم به ذری خانومم گفتم هیچی نگه بله آقای وحیدی بهم هم گفتن خواست برگردی سر کارت پس اون که بیرونم کچی؟ ا خانم محتشمی اصلا ربطی نداره مشکلش هاجقاهنگریه الان هیئت مدیره اداره توی اربیل اراق یادن هتل میزنه هنوز هیچی نشده خانم محتشمی ر کردن مدیر اونجا این دوسه روزم که نبوده رفته بود اونجا اونم میخواد آقا رزا رو به عنوان معاون با خودش بوره هاجقاهنگری نمیذاره بیچاره رزا این وسط گیر کرده اگه بره پشت هاجقا رو بگیره که خب همینی که هست میمونه پیشرفتی نداره اما اگه پشت کنه به هاجقا دیگه داستان فرق میکنه میتونه پیشرفت کنه ترقی داره چه میدونم اگه تا بودی چه میکردی نمیدونم ولی به نظرم آدم باید پیشرفت کنه آره ولی به چه قیمتی بی بگی اینجا بخواهم چیزی بهت بگم هیچ کس نمیدونه چی شده آقا رزا رو حاج آهنگری بزرگ کرده واقعا؟ بعد از اینکه که تو رودبار زلزله اومد حاج قانگری تصمیم گرفت مسئولتی بزرگ کردن یکی از این بچه ها رو به عهده بگیره شد همین رضا وحیدی خب این هم مدت چیزی به هم نگفته بودی سلام سلام داری شام درست میکنی؟ نگفته بودی که قاسم گفتم تعلق داریم زیاد میاد سلام بابا سلام دانشوی بابا نه یاری تو دو ساعت باشده هم یه شام درست کردم ببر بده به همسایه ها بچه های ما ها به خانم حسرت پیزو دارن بده به اونا آفرین دخترم دانشگاه چه خبر؟ یه دیگه اوله ترمه هر استادی میاد لیست ده تا کتاب میده بگیرن نگیری یا یک دو دوتا کوچه بالتر مشتری مونه ازش با تخفیف برات بگیره نه بابا نمیخواد بگیری از سال بالایی هم میگم کلی هم تر در میاد قربونه دخترم برم یه قدر پولو میدونه از کار چه خبر؟ خوبه اونم خوبه از تر همه تعریف میکنم حالا بقید چگاه کنی؟ نمیدونم هیچگاه رو کنم به نظر من باگر سر کارت سر تو به نصف این کارتا مگه که قای آنگری بهت بگه برو چی داری مگی؟ چیزی شده؟ نه بابا هیچی نشده نه ای بابا دواب بده دیگه آنه خانم بکنم موبایل شماست داره زنگ میخورم که موبایل نداره الو سلام دخترم سلام بابا موبایلت مبارک دستت در نکنه واخه تو چقدر مهربونی <تصفيق> بهتی گفته بودم هر وقت دانه شدی برات موبایل میخورم آدم منو چه مشکلی هست؟ الو قاسم سلام سلام خب بود به جای موبایل بدهیمونو به مخابرات میدادی تلفنمونو وصل میکردن آخه آخه هیچ کدی مون که خونه نیستی واسه کی وصل کنن بابا من آدم نیستم خواهر برادرای من آدم نیستم این چه حرفیه چش میرم وصل میکنم با ماجا باشه بزن یه جشن تولدی عروسی چیزی دوباره هم آره رو بلند ها چش خود میرم وصل میکنه بگیره. یه یوزار اصلا بس جون بگیرین. آی یه مو رو میدم. این سه روز اتاق 1705 ماله من. آخه یه مو حقوقا میدم اصلا حرفشو نزن. مرگه تو. مو به من میدی قایم آبان سازی اگه بدین چرا رنگیدین؟ چرا خوش شدی برگشتی بابا؟ خدا اینا 35 چی شده؟ والا نمیدونی چی شده؟ چرا شما عقب این واقعا نمیدونی؟ اول ببین دارین هتل چه خبری؟ چرا آدم جام شدن؟ باقا دو سه هفته بیش، حالا هم به نگفتم این پسر خوششیفر میشناسی همین ریزپشنه اون به من گفتش که زری خانم یه چیز میگم ولی به کسی نگو یه تحقیق پرنده از این صدا سیمایا خوب اسمش هم ولی روال نیست اومده اینجا و این پرازیدرنتال هیز از تر پنج رو گرفته به بو سکی کی؟ به بو بازده کی؟, کی. آمیتا بچه بازگاه همده آره اینجا آره عاشقشم گفتم همین دقا دروغ نگو چرت و پرد نگو گفت خدا راست میگم راست گفته دیشب اومده خب دیشب اومده الان بر ببیندم به هتل چه خبره نصف میروی انتظامی نست مرده و همجوری کیپ تا کیپ جمع شدن. خیلی دوست داشتم ببا خیلی با یعنی فقط ببینمش میگم آمیده جا تای شعله که مردی منم با حال پسر. پس هم ببین چیده چیده میگن که این شیلا خداداد و ایرج نوزری بودن تو مسافری از هند بازی میکردن اونا میخوان بیان هندی باش حرف بزنم خیلی باحال رقصش رو چش دیدی یک رقص باحالی داشت سینگ باط جامولیم ولی او مه محبوبا محبوبا محبوبا میری جانا گره ایندا شنیدین خانم آقایون سلام علیکم شما بخیر چند تاه از مزخرف بسو دالیسه ما میمونه نمیدونم تکلیف آقایون که برای یه تشریفات روز شنبه معلومه ها شنبه شب تشریفات داریم عروسی تولد هم نیست که بگیم بدون تا طول میکشه نمیدونیم ممکن از نصف شب بکشن اون طرفا بنابراین فقط اونایی که میتونن یا لازم دارن حتما لب بشن هشت نفرم بیشتر نمیخوام مهمونی واسه من تا باچانه اونطوریه شاید که میگن شنبه اومده خانم زری بنویس بیشور بینویس. بیشور هم بینویس. خوبی جمه پری خانمو. بازه ترمیزت هم بزن نبیزه. بشه بشین اونجا. خب تو هم دستت بلند کن مادر؟ من شمبه آف هم کلاس دارم. نمیتونه هم پوشم بیا. بابا من شمبه آف هم کلاس دارم. نمیتونه هم پوشم بیا. بعد بلاد. از کلاست میای. باسه تشبه چی ها چی هست؟ بلد نیستم. نمیدونم با از یا سن شما چی مادر کاری ندارید کاری توش بس واس گارسون شب 70 تومن نه نه معلوم نیست چه ساعت ساعتی طول بکشه 100 تومن میدم اه آه. آه. ببین آقا اینو سینا نیست منم تو بچرم خیلی آقا این خوبه شما خوبی؟ ببنیستم. کار خوبی گریم ما گشتینا بله. همینم بودیم هم جمعه هم دیگه بود. شنبا که بزنریم اگے چرا من تو تو بند اینجا خب پس سن هم بنلنسي چند نفر شدم آقای وحیدی آقای وحیدی مام دستمونو بالا گرفتیم مام نیاز داریم ما بله میبینم دفعه پیش که تشریفات داشتیم کی بود بعدش چند روز مرخصی گرفت بعدش هم به شهادت همین هم کارتون خودشو ما رو همه رو به بعدو بیرا گرفت که اصلا چرا تشریفات قبول کرده خودت رو بزنی جایی می چیکار کنیم هر وقت مشکلتون هر شد رو چشم شب نفر من اسم شما رو تو اشتباه باید, باید پول داشته باشم که مشکلم رو حل کنم؟ خب نیاز دارم آقای وحیدی. من میدونم واسه خاطر پام نمی نمینویسی. چرا شخصیش میکنیم مسئله رو خودی؟ خب بله دیگه. بله من از اینایی که تازه واردن اصلا نمیدونن تشریفات چیه شما ماشاءالله havasشون رو داری که کار بلدتر هم. نیستم. اصلا چه جوری که نیست. واسه جوریه؟ از بین خانم هایی که داوطلب شدن کی نیاز نداره و میتونه جاشو با خانم جمیلی عوض کنه بفرمایید همه نیاز داره خانم من هم به قران نیاز دارم آقای وحیدی ببخشید بله لطفاً اسم منو خط خب بزنین من ما شنبه کلاس دارم نمیتونم بیام تعداد داوطلبا هستن نه نفر من خودم باجا حرف بزنم خیر ببینی خانم علیه جلیلی حالا بیا تلفن کلام تاریه. یا باید کجا از خب بسته من یه لحظه میخواستم آقای آمیتو بشن و از نزدیک ببینم برم اگر ممکنه نمیشه که باید از قبل همایی میکرد هم هم آقا چی باید همایی هم کنم من از خدمه همینجا هستم درفتارشم هم آقا یه دقیقه قایش میکنم بفرمی باشه ولی من فکر نمیکنم خودشون همچین آدمی باشن بفهم. که... بفرمی چشمو الان بشکن بزنم جیک سامی اونا منو با خودشون میرم. یه جوری به من نگاه کرد انگار مثلا کاجولو دیده دختره از کاجول مجول چیه ای گم شد تو هم از این نگاه هیست نکه نه یه جور نگاه از این فیلمی خلاصه هیچی دیگه به هندی نمیدونم به بقیه چی گفت یه جوری به من زدن همه بهی بهی یعنی همون بله بله بعدش خودش به من گفت دختره ایران خوشگل کرد تخیر راییشون تو که ای سی ب بیده بسو سرسدان میتیم سو این بار رسو چا ببین الان داره میده داره میده داره داره میده برمیگرده بیا دیگه و آرزوت هم خوبی میاد بایه بوده؟ مبا با اتکالا خدا یعنی اینجا رو رفته نگاه کن میزو سپو نشو ای خدا ای خدا این میشه خدای مکس و شو م مکس شو عسی صبر ببین ببین این خود گاهی خوشی گاهی غشه دیدی فیلم شو میگه میری نسی بام مهمهری همینه همینه اینم هم چیز مرک براتتونیه مطمئنم چقدر این مرد با معرفه سلام سرممو چی شد؟ سر تویی؟ چرا نرفتی مدرسه مادر؟ تو خواب موندی یا مادر بزرگ راستشو بگو با چرا نرفتی صداش کنی؟ برو دوباره صداش کن تو, تو برو دوباره صداش کن سهر جان گوش بده به من تکونش بده مادر تکونش بده اه، پس صورتشو مچ کن رو ماچ کن الان صورتی سرده یا گرمه س... سهر جا ببین س... سر تو الان مثل رو قلبش ببین تاپ تاپ میکنه باشت باشت بخورم گلیم نگم بخترم نگم بخترم بردر خونه رفت خانومه شکو بیاد پیشت منم از خودم میرس یعنی چی مورده نه مرده مگه نمیگی تاپ آروم باش آروم باش. باش چی شده آروم باش خانرم مرده خانرم مرده خانرم مرده <تصفح> وحیدی، وحیدی، بوجه رو زتبور، خیالت راحت باشی خودم بهش خیال خیالت باشی ببخشید، آقای وحیدی رو ندیدی؟ اینجا بودن، رفتن ببخشید، آقای وحیدی رو ندیدی؟ آقای آهنگری اومد بردر در زری خان کنی؟ با آقای وحیدی کار داشت با چه خرابکاری کردید که آقای وحیدی بعد بیاد جمع کنه آدم متکثنی دوباره از اول شروع کردی که ما این وقتو تمومش کردیم ما به جایی نرسیدیم آقای بهتره تیه بعد برسید چی؟ حتما دیگه به در چی به زری خانوم زنگ زدم گفتم مادرش بیچاره فوت کرد زنگ مادر زری فوت کرده رفت بعد وقتی تفلکی هولکی همه چیزو جمع کرد رفت به شما بگم شما ولید مایکور میپرسید چرا شما میگی تو. نه خودم کاراشو انجام میدم. نمیتونین بزرگ دستا اونو میمونین. به به چه دختر زرنگی ام هست. خوب بعد خوشی داره بقیه جا کنه. امروز به میکنم فردا براش میگردونم سر کار. صبح میخواستم برای تشریفات پرسول انتخاب بکنم هرچی چی قدیمی داشتشون میبرم والا فکر ما تو این قسم توجهشون نمیکنه. همهشون انتخاب میکنن دورو ضرر رسیده. آخه ولیدی قضیه چیه؟ قضیه اینه که خاله معتشمی از من بپرسید. اونو من آوردم. الله لعن برام سپردند آقا ولیدی. چیکیره تر آقای وحیدی شغلش اینه شما دلش می‌خین من کیو دست کی بفرمم اگر شکایتی از مهمانان اومده یا از کار پرسنل ناراضی هستین به مدیریت شکایت کنین اونم من اخراج میکنن تو هرغدی رو تو کار منو پرسنل من, من دخالت کنی مگر من شما با افق دیپلوما و موسه گری داخل بخش مدیریت من اعتراض کردم تو همه کمتر حقوق میگیره حتما بعد خدمات بیجه انجام داره آقا رضا میبینی دراغ ما توهین می کنم ایشون نمی خب خیلی شلوغش می گه. شما بورو، لازم ما چه شما چرا هندسی جامعه سیتی می فارین؟ حالا که رزورواتور، میشه تأیید رو کن. اصلاً این نیست. اگه تو, تو. تو. تو. نظر، در اتفاقی که من آوردن می تو من داره برای عیضات آوردن تو فارم. پس حد تو، تازه خیلی بگم. شما هر این حسابات بکنید. هر ذوری دارم میخواد تو با همه دونید دو داده من رو برساره و اندخالت کنید با این وقت رو تمیز کردید سلام رفتین کلان تری تا کجا تمیز کرد رفت بالا با رو تمیز کرد از پدرتون خبری نشد فردا نره به این پسره بگی من در پا دارم به به همین رضا وحیلی دیگه ولی خانم چیزا به من چه ربطی داره یه جوری آخه نگات میکنه فری و محتشمی به فهم نابودی ya. این کیفا همین توی درش با بود کدوم کیفا؟ بالا نرفتی؟ بالایی نه ساعتاشم هم ندیدی؟ ساعت؟ نه اود اود دود چیه؟ اصل هندی. بگو از آذر بپرسه اون صریحاش خوب میدونه. سلام. سلام، نه، ملیحه خانم هستم. آخ وحیدی، ببخشید. خودمون هم دل بیام پایین ولی مجبور شدن. صریحام خیلی نگران بود. تفخیل نیست. نیست، اون حالا اگر از پسش برنامه به وقتش من خودم بخالت می شما نگران نباش، به کارت شده؟ بله. شما گل بچینی؟ گل از کجا؟ گلچینی، گلچینی بلدی؟ نه گلچینی تحضیم <تصح> ام... اتاقای ممونه ویژه و آدم محروفه و زنی خواهم توی مدت یه چیزایی بهم گفتن ولی خب هندوش برام پیش نیومده خیلی بعد باید کنیم تا پیش بیا مسترکار پیشتونه بله پس بپرم میرونم بیارم دوست داریم آقا نشد زرم میزه. آقای وحیدی تموم شد آقای از شما نکنم با این و ظرافتی که ببینم کسی از شما هیچ بغانهی نمتونه بکرم هنرم میخوندین معافل میشده هم خیلی معمود من رفعی شما هوتل داری خوندیم بعد فهمیدم فارغ و تحصیل حقوقی سال آخر مثل شما کار میکرم که بتونم هزینه تحصیلام بود. اینجا هم هم دیگه <laughs> دادا حمر میواد مادر چجوره بشاب به میخوامن ام تو مالاتو گرفتین کامون شده چه میدونم بابا تو طبیعی مال استان بوده تو بودو بودی درخونه رو برده ببر مدرسه بر بیا اینجا دیگه شد علاقم تو هم کلیدارو بده خودت برو که از دانشگاه مرتضایی گفت دیروزم ناراحت بود که ما خسته گرفتسن سلام جا هست حالا آقا من بابا حالا هر جور راستا میگی شما در در دنبال من میگردی تلپون همونم جواب ندیه وقتا. شرمنده تو بیمارسان بودم حالا مادرزون چطوره؟ تو سی سی و با خب چی کار داشتین پیشه آجاقا رفتنید؟ نه دیگه نرفتم گفتم اول به شما بگم همون دفعه گفتین اول بهتون بگم آره خب میریم سر بشش حل میشه شل اتاقت مچنده؟ ایف دست ایف پنجه آقای با. هم نیست ولی نه هنوز. ولی فردوسم حتما تو میمونی میبینه. داره زد تو مجلسی نیست. خیلی دستش سلام. من خیلی دستش رفیم شو لر ولی همش بار دم یه دور سینما. تو بخشیم آیا کشیدی؟ گفته میری نسب و مهری خیلی خوبه تو هم شو نه چیز وانیاره. یه دوستی هم نیک دوRINGE دوRINGE هم مزند. بجتنا واقعا خوبه خبه خبه خبه بفرم ها چقدر با حال این داریوش فرهنگا، ببین ریزش بر و امید حرف خود داریوش فرهنگی میذه. رفتم شهر میزشون گفتم آقای اکبر با من یه عکس فگیری گفت حال خانوم چرا نمیشه؟ دامش گرم این داریوش پای، دامش گرم چقدر مشتی گفت خانوم من میاندازه. کلا ما موبایل دادیم دست داریوشو. دیگه بازدید پیش اکبر بگو کی مارودی؟ بگو کی مارودی؟ من موتاش می‌فرار کردن، بابا خیلی فرسیدن. الان موبایل موبایلمم خود دستی داریوش می‌دارم نه در زن مزنه. دادار چه غیرتیه برو منم جواب دادا من شما میتونی بری به آقای فرهانی بگی که موبایل زهرا خانمو پس بده نه من, من اصحابم از نیست زهراشون ببین چیزی نیست برو به موبایل زری دستت بده دیگه هوا اصلا خجالت میکشم نمیتونم یه دفعه برم ببینمش آخه علیو مهتشمی الان منو ببینه میدونی چجوری میذایه میکنه برو قربونت خاله برو عزیز دلت میگه خدایا به چند چی اون اخر به چند چی چی آمه عزیزی تنم چی هست جانم جانم سهلا چطوری عزیزم آم آم چی شده چی شده به ما بگوشی به هزرات ها باز بخور اون همیه تو فقط یک خود سفره علا میان خودم مالی جو مالی باید برم چیشون مالی مامان چیشون مالی مامان زری مامان مالی مامان چشم شدی؟ از فونه زنگ زدم تو هم ندادی نمی؟ سلام. سلام. سلام. سلام، سلام، سلام، سلام سلام، سلام سلام علیکم با چطوری؟ خوبه کام ای بابا، من که همه جول سپاسی رو دوترانی کرده بودم آخه گرفتار بابام بودم یه ریز مشکلاتمون حل بشه چشم دستش آمد، الان دخپام گرفته بود چیزی نیستش، باید روزن دفتر آما خانوم بله زمدر کارت دارم زمدر؟ چطوری دفی؟ شقویخ چقدر عوض شدی ببینم، اینجا کار میکنی؟ مم. چقدر اینجا با حاله؟ چه همه باستم میمیم هم. نه واسه چه هم خوشتیم خلی خوشتیم شدی واسه خود. اینجا چه فرمی کنی آنه؟ گفته بودم که انده تاروخ دایمه با اون اومدم اونجا هم واسه رفت و وقتی تو خوشحال شدم اومدم طرفتو ولی گمت کردم بگم نگفته بودو تو این هوتلیم دیگه اینجا کنم من مهمون هستا خب ببینی همه ای بازگراه هستن لیله ه هدیه تهرانی، رضا کیانیان پرویز پرسوی من خیلی دوستش دارم استاد انتظامی، تازه چند تا از این کارگردانم به من پیشناده باز شدنم. میگم که چیه؟ مامانیت کجاست؟ مامانم، مامانم اون هاشش اون آخری است خیلی چه خوشگله چه صورت مهربونی داره یه اینجا خیلی خوبه، بذار منم اینجا بمونم بمون اینجا آره بابا کمکتون میکنم بمیش مگه تو میگویی کجا حوصلهت میره مثلا با شرق بی بریم بمال مدیرم میاد بیبریم. بچه باچو باچو انتقو باچو نمیذری زری چو راست بالا دیا راستش رو مادی کردم اون تو چی گفتی پرسیدم وقت شام که گفتم میزارو جمع و جور همچین بیارم همین نگات می میکرد البته آقای وحیدی هم هی hey, نگاه میکرد بهش هی نگاه کرد به I like your hospitality towards my guests. Nice and friendly. <laughs> no, no, say it in English. Thank you. Lord. I'm doing everything according to the rules and regulation. Your English is good. How come you're working here? It's Mr. Hungary's decision. We weren't pushed by him. Onjo sar karde mizani. زماناتم تنظیم می‌کنم. خیلی ممنون خانمه محترمه چون لوس داریم. من تا من دیگه اینجا جا افتادم. همینجا برون خوبه راضیه. اون هم جا میافتی. البته اگه آقای آهنگری درس خوندت باشه، می‌ذاره بیای تو اون بخش. اگر هم... نه. نداشتم از خانم می تشکر می‌کردم. ایشون زبانشون خیلی خوبه. آقای فرهید شما که می‌دونید سین زبان چقدر تو تاثیر میذاره بچه‌ها بودنشو بخش خانه‌داری. والله من الان منطق سوال شما رو تو این شرایط وضعیت نمی‌فهمم. مشکل اگه ایشون که ایشون هستن که اینجا باشن که در سورتی روزو مکشون دانشگاه بودم جارشو مکشون موشگه ایچی هرم متوجه نمیشم یعنی چهار دست کار کنم شما بفرمو کار شما شما بفرمو بعد وقتی کاره من چهار شاخ بیرمونه که چی واید بگه یه شکل ما بناده یه اوتل پیزی دارست بند کنم اونم توی همچی شبیه با فکر کردی نمیدونم چرا آهنگر نگوشه اینجا چرا از وقتی این اومده زندگی نگی من رفته رو هوا بذاری زیر همه گوله قرارمون رزا رضا. نکن رفتم به عربی شو. خونه صغده تا نکن یه چیز بین من تو توه ربطی به کسی نداره. منو تو نتونستیم نگرش داریم تو آوانشو گزدگی نمار پس بده نتونستیم نه نتونستیم نتونستیم چون من تلقیتو رو از عشق و آتفه نمیپسندم فریبا از اینکه تو از دوبه همه چی از این بالا نگاه میکنی بگه پایین بابا بگه پایین می زری رفت نشد شد به پول سن. بگیره. من هاجاقو بهش گفتم صندوق خالی. میدونستم. حالا نگا نه میشه حالا جور میشه. دیگه هستم خاله خدا معیش. شپچلی باسشون هم شردن به همون سالن از امروز. سلام زین سیپا. بکارتون شما. کاری نکردم پس چرا داری اینجوری نگاهت میکنم این چه میدونم من کی آن آقا هست آقای میرکو بادی هست مسئول حراست و چیکار کردی مریا کاری نکردم سلا چشون داریم من نمیدونم چیشب چیزی شما؟ آقای وحیری اومد خود داره ساعت دو که مهانی تنم شد خب. آقای گفتش که نمخواستان رو تر تنمیز کنیم اول وقت که اومدیم بیاین جنگ کن الان اینا اینو آمدن چی شده حال مادر چطور؟ گفتم میمیره ولی صبح خوب بود شما تشریف میاریم من؟ شمی، هشیفی این شما. شام. شام کاره تونو سلام. سلام دکترم. دانشجویی. بله. کجا؟ دانشگاه روده. چراش دی؟ داروسازی. روده که داروسازی نداره. چرا یه دو سالی از باز کرده؟ ثبت نام کردی. برای نیم سال اول نتونستم سبتانم کنم چرا نتونستی؟ ام... شهریش نتونستم جور کنم دیگه شهریش چقدر؟ ام... یک میلیون و 600 خورده موافق باشی. ببینم این کار کردنت لفنه به درست کننده نمیزنه نه خوب مجبورم دیگه امروز چه ساعتی که بست داری؟ ام... ترفایی بعد از زهر چه ساعتی؟ ساعت چنده؟ یازده نه اون اقعبه ساعت خوده من خودم ساعت ندارم ببینم همونه جمعیم کجاست؟ پیشه میره گوابادیه بفهمم سلام هاجاقا سلام چیو داخل محتشمی چیو کرده مریم یوتیوب چی چیو کرده هاجاقا بچی چند تا سوال ازش دارم مگه چیه آخه اینطوری که سوال نمیشه حتماً یه چیزی شده مریم دخترم هاجاقا میدونم حواسم هست با خدا حواسم هست شما برو خیالت راحت هاجاقا اگه میخواین چیزی بپرسین همجلوه من بپرسین الان اینا فکر میکنن چی شده به شما میرسین اجازه بدین تحقیقم راجبه ایشون تمام بشه هاجاقا تو رو خودت بگین چی شده من خیلی نگرانم خات قبلان اگه موردی چیزی پیش می اومد اول ما در جریان قرار میدادیم اقدام میکردیم اگه راضی نمیدادیم بخش شما همینجوری جمع قبلا میشد مراتب ابراز کارکنار میگیم وقتشو نداریم آقای وحیدی به خاطر اینکه مسافر اتاق 1705 4 سو پرواز داره خب بعد مسئله حل کردن می بلخره چی شد حاجا خانوم اتاق 1705 ساعت نمیدونم امیتو بچا دورین نیست به انشاءالله باور کن من اصلا ما به چیزی دست نزدیم. البته آقا یوهنگری گم که نشده چون ما تو همین الان داشتیم دنبالش می‌گشتیم. تو متذکری خانم متکلم. فکر آبروسونو بکنی. ما هم به فکر آبروی هتل هستیم. دستور از مدیریت رسید اجازه بدین کارشون رو انجام بدم آقا عادی فکر می‌کنم اینجا بتونیم صحبت کنیم. اگه اشکال نداره میتونم اوتاور کنم. مورد بسوریم باقای وحیدی. بزنین کارا رو راهه طبیعی خودشه تیک ما آی بایدی شابیلی خواهشون رو دشتی بشه بفهمید به کارتون برسید بفهمید خوشوی نبود رخشو خونه ملافه ها خوشوی بپرسید را. پایده ندارد. اجا, دیم آجا. پایده نداره آقا دیم من باشم عزیزم پایده نداره اجازه بدین شما آقا اینجوری که نمیشه آقا پایده نداره اینجوری من به خدا ندارد. چه ندارد. رو نمیشنازم باتن... پایده نداره هرین چی مشکلاتی داره پولا نمیخوان تمایلی به حل حضور نداره خودمون اینجوری که مردم نمیشه سر زبانم خودمون حلش می چه جوری میگیم خودمون حلش کنیم این الا با خودمون آقا یه جوری من حق داره ببین یه مسافر معمولی بود به جوره زاد میگرفت تمور میشد دعوت شده است حالا اون فیلم که شده مهم نیست وزارت ارشاد، وزارت امور خارجه، بس آبروی من تو هتل نیست، بس آبروی ملیه. ببین آه. الحمدلله یه کاری که کار کارت سفارت نکشید. بابا شد. چرا انقدر گند می‌گی مسئله رو؟ یه ساعت هم همین هتل گم شده پیدا میشه. دیگه از دست من تو خارجه. کار بچای ما نیست، من به سرشون قسم میخورم. خب میراکواجی چی میگه؟ میراکواجی واس خودش میگه. اون میگه کارمند کار زیر دست شما اومنده رو میشینسه. جاست پرسنل من کی میتونه تو اعتراض؟ خیلی خوب، بدن پرسونل من زیر جواب. اجازه منو تو خاطره تو بره هرا. آقا همین الانم پای آبروی من آقا بعد که بعد پا داره پای آگاهی رو میکشه وسط اون دختر بنده خدایی که همین الان تازه دانش شده بعد سوءسابقه بخوره چیکار می‌کرده؟ کار کاری داریم. بنو بز کنیم با ماشین. برو صحبت. سلام. الله یا شما که مارو می‌شناسین. شما نه. بابون گریه نکنیم پبینم ات نراحت نباشید که بابون با تو که میدونی کار من نیستش میدونم میدونم کاش اصلا نایی مدر بودم اینجا به خودو نمیخواستم اینجور نراحت باشی جلو اینو این با بکن گریه نکن دیگه بیا کار من آقا رزا آقا رزا ببین کار من نیستیم آقا رزا نفرم باش حرف ند بلی کار من این بیشتر ساعت چشم میشده و جونه دم آب یه لحظه وای ببین این از بیمارستانه ببین نیم ساعت پیز داده او که پول جوری کردی عملش آمادهش بکنی <تصفح> مادرم مادرم او به روم میره دوباره مادرم مادرم بیدارم او به روم من اینطور میگه فادی <تصفح> لازم اینجا میشه فاد میگه او فلج دیگه دیسی واسه ای شخصی هند دست نیست <تصفح> دیگه بیای کنار شام هایم خوب چیزیه. شما احلا دارید اون باری چه میگرد؟ ساعت دیگه پس بابسته دیگه چیکار کار داری؟ بیم خواهدید این چه خود تو کمیده این خوانم چی میکنه؟ ستا موبایل دسته که رو بیم بذارید این چیه؟ این چیه؟ بازش کمید این چیه؟ جعب هستیه جعبه اگه شما بشه شکل نمیکنه دواهامه پی میگه پی میگه اه آقا وحیدی چاقو بسته تو کما جرمه گوشی موبارسه تا داشتنش جرمه آقا نگاه که این قدیمی که داغونه هر کدوم نمی ساعت نیم ساعت باحت خالی خاله بیکنه من میگه شما میری زورگیری من زور گیرم من زور دارم اه من فقط گیرم آقا من از من رو زیاد دیدم تا کمی قشم قش دومت نزن نداشت من دومت نزن آقا واهیدی آقا واهیدی به خدا بد به خدا بد اخراجم کنین بیرونم کنین به این به جور این نه به جرم دزدی به قرآن مزیدی یک سال من خب باید باید باید باید باید باید باید قبر داری نه ترس من یه نه اخراج میشه نه سوه سابقه میخواه هیچی ما با همه چی دون باید سدیم بیدانشو باید هممون گیره بلنگه این موتشم یه بدجوری گرده به این بند خدا بمیرمد؟ بعد من که بده هده بعده من خودم گیرم به قرآن شما که میدونی کدوم بعده بعده چی؟ این ازش باید نیزی و بیاید بگه این کار واسه من با فلان بیزن چی شد؟ چیزی سیده نشد خب شما کموت خانم هاشم یو ورسی کنیم چه کاری؟ بذار کمد خانم هاشمی تموشه. اگه پیدا نشه از سرچ. این چیه؟ آدامس. برو برده واسطه آغاز بکن از کارخانه دارم اون بال. با ما که کنار نیامیدین. ولی اونا به حرفتون میارن. یا با ام حسین. عمل روز زود واسه ام حسین گفتن. بذار پات برسه تو آگاهی. یا ابالفاس. من بدبخت چقدر ذوق کردم آبی تا به چند داره میاد. زری چرا بهشون نمیگی؟ من دوزدا من اینجا میام چه کیلو کیلو دارو میخورم این می همه دوام مصرف اون وزن بابا من دزدم حاج آقا من دوزم واخه زری بهش میگم من چند دفعه اومدم و جوایسام کار کردم اما سه دفعه آقا وحیدی من که قرار بود دزدی کنم که اونجا 12 تو ساعت بود چرا یکیشو بلند کنم از تو توشو بلند میکردم. عمریم پیدا نمیکردی ها آقا به خدا انشاءالله پیدا میشه بخش بخش ملحظ آجه اومدیم این ساعت پیدا میشون تکلیف هسته دو بنده خوده چیه پیدا میشه ولی حدث من اینه که کار این دو نفر نیست کار هیچ کدومشون نیست آجه اومدیم این رو خوب میشنم فقط اون میتونه چون فرصت کافی داشته که بسخواسته بشه تحقیق کردیم هنوز نتونست کل شهریش رو بده بچه ben نه نه آجه کار اون نیست اون دانشوی توز توزی نیست همه ها توزید چرا ماده داره. داره. ده اینجا داره تو خانه داری آرزا ما کارمونو بلدیم شما بفرمیم اجده بدیم ما کار کارمونو رو آجه ها با حریم کن لازم میشه. خب اگه نگران نباشید این امروز یخچال. ولی نذاریم زبن کلانتری بیا. شخصا دار باش دعوت کنه. ان شاء الله کلانتری باشواز نشه. آقای پاشان میگه ست خانم بره. دوکت چه دهزه؟ نتیجیه وقت ببینین نه. بزن ببینم ولا. میخمه ببینین چین چه فایده ندوش بعد شما خواهش آقا چیکار کن؟ چقدر طول میکشه؟ از کارونخری دارم میام چه بیام خیلی ان شاء الله Thank you thank you good morning تو پیام داشتم بابا 12 سال good morning چیه دیگه چاخو کتاب بده خانم برای سحرنا جی قابله قابله من میدونم قابله japonu من میدیدم امضا میکنه آها از این کم از بچه شکایت سلام. سلام علیکم مادر مسئله که بود تو همین هتل حل بشه یاختشون و کاریو چه میدونم پای پلیس کلاً دارن وزارت کشور نمیخواد شما حرف حسابتون چیه؟ حرف حساب شما چیه؟ شما میون اونجا بودی؟ ما باهوش صحبت کنیم؟ آه شما اونجا بودی بفرمایید. ایشون گفت من اصلاً شکایتی نکردم. گفت اگه صد پی داشته براش بفرستیم چون هدیه عروسشه. بعد نفر یه 100 دلار بهشون اهدا داد. البته به دکتر هم خانم 50 دلار بیشتر داد. چون فهمید که اتاقشون گل کاری کرده بود و کارش از بقیه بهتره. خیلی جالبه. این رو شرمنده خودش کرده بود که اگه کاری که از اونا باشه فردا صبح ساعتی گوشه اتاق پیدا میشه. هیچ‌کم کم کاری کی بود. یعنی چی که هیچ کس نمیفهمه آقای آهنگری حرف من اینه که توی ای هتل دز پیدا شده. خیلی خوب. یا تو بخش من منن، یا تو کارکنای شما. آقای یوهان میته با چقدر که دلشون می‌خوام می‌تونن ببخشن. ولی بحث ما اینه که ما دنبال دزد هتل میگردیم. مدیریت ما میخواد. هاجاقا ماکینا تستیم کاری بکنیم. پس این که چی شد دو ساعت اعلا. زنگ زدم گفتم نه. چون هیچ شکایتی نیست. دست شما درد نکنه یعنی ما اینجا دیگه هیچ کاری. ای؟ تا اینجوری نمیشه. مرا خودم بهشون زنگ زنم میگم بیام. چون این بار من شاکی من نمیدونم هاجاقا شما چرا متوجه نیستیم تو این هتل دزد پیدا شده. اومه چه دزدایی؟ اینقد باهوشن با و بلدن که چیکار کنن شما براشون چلو کباب سفارش بدین. ساکار خانم. دزدن بالاخره آدم گرسنه‌ میشه غذا میخواد. آقا تو چرا همیشه نمیگی؟ چونه نبگی دکتر باما کنم قصد که دفتان قش کرد تو ما میبینی من پیچشم هراشی ها نقصیش اصلا خودم برش وکیل بیکن باچه ها بتونیم بریم سر کارمو نه بچه هستو دست داری خانم دست بوزه پس تلفون کنگو میدم دنبرش بگم سب میبروش خونده خودم آه هستیم راحت بفهمیم بابا آب اول عاشق بشی دیگه اول بعد آب تلا بیار من چون قربون قلبت برم چی بود ببخشید یه لحظه داشت روش را میرم خردسمی نمیدونم چی شد من علی من علی من الان دکتر بیاد من خواهش می‌کنم مال اعصابم ما جون همه اینا مال اعصابم نمیدونم برای چی آوردن بیرون؟ بهتری ملیخ خانون بابا برای چی آوردنش بیرون؟ بابا بذار بار جگاه میگرد نمیشه آقا بابا خودش با صحبت کنه حل <سؤال> میشه دیگه برش گردنین تو. برش گردین تو. ببر بسر کن. اینه ها جگاه چونید؟ بجاید بجاید یک این درست ها هستله هسته هم میکنه فکر کنم با به هم چی میشه عشقا مرا شاید شب مادم پیش دیگر بزر به قدم باید میگم نه نداره با عشق باید میخواهم که بیشم که این کارو میکردی رضا فکر میکرم چون دوست هم داری حسودی میکنی ولی الان نمیدونم پس دیگه این کارو نکن حرفتو بگو آدم راجب خودمی خودم با هم دیگه حرف بزنیم حرفات دیگه بدنم نمیشینه دیگه با برشو خودت میگفتی بله خیلی خوب اومدن دیگه یعنی چی چه فرق میکنه شاکی من باشم یه هتل، اینجا دزدی شده باید دوزدم پیدا بشه باشه میگم وکی بیاد چگاه تنظیم کنم خب به رو ببرم نمیرسه دیگه خیلی خوب باشه اومدم باشه خودم میامن گفتم اومدم دیگه سیگار میکشی رضا؟ تو که خود من ترک داده بودی باش. نمیخوای بردنشون رو ببینی عربیل باید میام قیمه همینو نمیخوای عربیل باید میام هر جور بخای. تو بخوای تبخوای مرون ریزی تو خونه سعادت بادم قبلش رایدیف میکاری در مورد اختلاف نظر تو و آه آهنگریم من نیگه هیچ دخالتی نمیکنم هر هرچی امون که تو میخوای فقط هرچی بین من تو از بین من توه با اون ستا بدبخت اونجا آبروشون گروه اصلا ربطی نداره الان فقط تنشاکی توهی بی خلاصشون کن نمیفهمم چی میکنم چرا میفهم چی میگم پندازی ست سالی گرنگیر میشتسین خب میفهم ایچی میکنم اینارو بفرسیم برن دو مال کار زندگیشون. نیرو وادی بردارنشون. آها گریان باشون رفت. الو الو الو آقا. تو اینجا آقا. الو گوش کن. گوشی گوشی آقا. اوه نمی‌شه. آقا، ساعت پیدا شد لطفاً برگرد. وزام سربازا رو بگو اجازه بده خانم‌ها برگردن. از کجا آوردی؟ به پیدا شد دیگه کاری کی بود؟ نه پرسه چرا نمیشه که باید گزارش بدم بعد پیدا میشد پیدا شد دیگه خدا رو شد حل دیگه خانم باقتا چی؟ اون شاکیه میدونه یعنی چه نمیگی؟ آرزو. پای خودت گیره باید ببین کلان باشه مسئولیتش با من میکن بدی سر کارتون. آره این دیگه. من سفر برم. محتشن. من دیگه از فردا نمیم سر کار خدافز